خلوت تلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک، گفت ای شه خلوتی کن خامه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را، کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم زین کنیزک چیزها، خانه خالی مند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی، نرنرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست، و ان در آن شهر از قرابت کیستت، خیشی و پیوستگی با چیستت، دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جویت سرش ور نیابد می کند ترش خار در پا شد چونین دشوار یاب، خار در دل چون بود، واده جواب، خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی، کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند، دفع آن بر می جهت بر جهد وان خار محکم تر زند، آقلی باید که خاری برکند، خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت، جا زخم کرد، آن حکیم خار چین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود، زان کنی زک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان با حکیم و قصه ها میگفت فاش از مقام و خاجگان و شهر تاش سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت پوش، تا که نبز از نام که گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان، دوستان شهر او را برش بعد از آن شهری را نام برد، گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ نام شهری گفت و زن هم درگذشت رنگ و روی و نبز او دیگر نگشت، خاجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک، شهر شهر و خانه خانه قصه کرد نیرهش جنبید و نی رخ گشت زرد نبز او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چکند نبز جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد چون زرنجوران حکیمین راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت، گفت کوی او من در گذر، او سر پل گفت و کوی قادفر، گفت دانستم که رنجت چیست زود، در خلاصت سهرها خواهم نمود، شاد باش و فارق و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم می تو میخورم تو غم مخور بر تو من مشفقترم از سد پدر هان و هان این راز را با کس مگو گرچه تو شه کند بس جست جستجو چونکه اسرارت نهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت دانه چونن در زمین پنهان شود سر آن سر سبزی بستان شود زر و نغره گر نبودندی نهان پرورشت یافتندی زیر کان وعده و لطفای آن حکیم چرد آن رنجور را ایمن ز بیم باشد حقیقی دلپذیر وعده باشد مجازی تا سگیر. وعده اهل کرم گنج روان وعده نااهل شد رنج روان